عزیزان، زمن بررسی کتاب مقدس به کتاب حکمت امثال سلیمان رسیدیم. در این کتاب کوچک، حکمت، راهنمایی و اصول شگرفی در تمامی عرصه زندگی وجود داره. به دقت گوش کنید و از خدا بخواید که به شما نشون بده چی باید یاد بگیرید. چون همونطور که کلام خدا به ما یاد میده، احترام به خدا آغاز حکمت است. این شما و این معلم ما امثال سلیمان ابن داود پادشاه اسرائیل به جهت دانستن حکمت و عدل و برای فهمیدن کلمات فتانت به جهت اکتساب معرفت معرفتامیز و عدالت و انصاف و استقامت تا ساده دلان را زیرکی بخشد و جوانان را معرفت و تمیز تا مرد حکیم بشنود و علم را بیفزاید و مرد فهیم تدابیر را تحصیل نماید تا امثال و کنایات را بفهمند کلمات حکیمان و قوامز ایشان را. چگونه یک شخص حکیم می شود؟ اولین گام برای حکمت اعتماد و احترام به خداست. چون احترام و ترس از خداوند اساس حکمته. شناخت خدا ما را به شناخت هر گونه حکمتی قادر می کند کتاب امثال به این ترتیب شروع می شه. زمن بررسی هامون از کتاب مقدس به کتاب دیگری از مجموعه شعر کتاب مقدس رسیدیم که توسط سلیمان نوشته شده. کتاب امثال گفتیم که در مجموعه اشعار پنج کتاب وجود دارند که عبارتند از ایوب، مزامیر، امثال سلیمان، جامعه و غزل غزلهای سلیمان. چنان که دیدیم کتاب ایوب پیغام خدا به قوم دردمند بود. کتاب مزامیر پیغام خدا به انسان درونی قوم در هنگام پرستش بود. وقتی به کتاب که سلیمان نوشته می رسیم، می بینیم که خدا هنوز مخاطبش انسان درونی هست و یا قلب قوم خودش. کتاب امثال پیغام خدا به قلب قوم خودش است. در زمان که در زندگی روزمره فشارهای عملی رو تجربه میکنه. از پس قوم خدا باید در تمامی روابط زندگیشون حکمت عملی داشته باشد. این زمینه خدمتی کتاب امثال هست. اساسا باید بگیم که همه ی کتاب امثال رو سلیمان ننوشته. سلیمان بعضی از این امثال رو گردآوری کرده که توسط انسان‌های حکیم دیگر نوشته شده و دیگران هم برخی از امثال سلیمان رو گردآوری کردند. کتاب امثال به این ترتیب تدوین شده. در ابتدا منظور از کتاب امثال رو می‌بینیم که در نه باب اول ذکر شده که مانند یک مقاله در مورد حکمت نوشته شده. بعد شما امثال سلیمان رو می‌بینید که از به شروع میشه. و تا باب 22 آیه شانزده ادامه پیدا میکنه از باب 22 آیه 17 تا باب 24 آیه 34 شما امثال حکمت رو دارید که شاید توسط دیگران نوشته شده باشه امثالی که توسط سلیمان نوشته شده و توسط مردان حکیم دیگر مانند حزقیال جمعآوری شده در بابهای 25 تا 29 کتاب سلیمان جا گرفته باب سی شامل امثال آکور هست و باب امثال لمویل پادشاه است که از مادرش یاد گرفته پس به لحاظ تکنیکی تمامی امثال نوشته شده در کتاب امثال توسط سلیمان نوشته نشده اما به همه اونها به عنوان امثال سلیمان اشاره شده در کتاب اول پادشاهان باب چهار آیه سی و یک و, سی و دو آمده که سلیمان سه هزار امثال و یک هزار سرود نوشته در کتاب امثال کمتر از هزار مثل از سلیمان نوشته شده و در کتاب سرود فقط یکی از سرود های او رو میبینیم که به نام سرود سلیمان ثبت شده. کتاب امثال میتونه به این ترتیب فرسپندی بشه. در باب های یک تا ده امثالی برای جوانان، در باب های یازده تا بیست امثالی برای عموم و در باب های بیست و یک تا سی و یک امثالی برای حاکمان ثبت شده. وقتی که جملات حکمت و کاربرد اونها را بررسی میکنیم، می‌کنیم. سلیمان که خودش شکست خورده بود چطور تونسته چنین کتابی بنویسه گفته شده که سلیمان حکیم ترین مردی بوده که دنیا به خودش دیده حکمت سلیمان در کتاب امثال نشان داده شده حکمت عملی زیادی در این کتاب کوچک ذکر شده چطور چنین فردی توانسته این کتاب حکمت رو بنویسه و به مردم بگه که چطور زندگی کنم؟ جواب متعددی برای این سوال هست حکمت های کتاب امثال بستگی به این نداره که آیا معلف اونها رو در زندگی خودش به کار گرفته یا نه؟ اینها های الهامی از طرف خدا هستند. جواب دیگر برای سوال ما اینه. این امثال و مزمور 127 و کتاب جامعه توسط سلیمان برای جوانان به این منظور معایزه شده که بگه کاری رو که من کردم شما نکنید. از تجربیات من استفاده کنید. تجربه تنها معلم نیست اما معلمی قانع کننده هست. شما مجبور نیستید که از تجربیات درس بگیرید. میتونید از اشتباهات من هم درس بگیرید. جواب دیگه برای سوال ما اینه که سلیمان یک فیلسوف بوده، یعنی عاشق معرفت بوده. کسانی که عاشق معرفت هستند همیشه معرفتی رو که عاشقش هستند به کار نمیگیرند. در جمله آغازین امثال سلیمان به ما میگه که چرا کتاب امثال رو نوشته. وقتی یکی از نویسندگان کتاب مقدس دلیل نوشتن کتابش رو قید میکنه من اینو خیلی دوست دارم. سلیمان میگه من دوست دارم مردم بدونن که چطور زندگی کنن. یادتون باشه که کتاب مقدس به این دلیل به انسانها داده شده که بدونن چطور زندگی کنن. موسا در تصنیه هشت سه گفته انسان نه تنها زیست می کند بلکه به هر کلمه ای که از دهان خداوند صادر شود انسان زنده می شود. موسا گفته تجربیاتی که قوم خدا در بیابان داشتند به خاطر این بوده که بدونن چطور باید زندگی کنن، چون انسان با اطاعت از کلام خداست که زندگی میکنه بدین معنی که کلام خدا تماما مربوط به زندگی و زندگی تماما مربوط به کلام خداست هرچه بیشتر کلام رو بدونید زندگی رو بهتر درک میکنید هر چه تجربیات زندگیتون بزرگتر باشه، دیدگاه شما از کتاب مقدس وسیعتر میشه این مخصوصا در مورد کتاب امثال صدق میکنه سلیمان گفته که منظور از نوشتن این کتاب این بوده که قوم خدا بدونن چطور زندگی کنن. حکیمان حکیم تر بشند و بدیم وسیله تبدیل به رهبران بشن. سلیمان همینطور گفته که این کتاب رو برای راهنمایی جوانها نوشته. او قصد داره به جوانها در مورد وسوسه های احتمالی هشدار بده. به این دلیل لازمه که جوانان هر روز کتاب امثال رو بخونن. من پیشنهاد میکنم از اون جایی که این کتاب سیویک باب داره اون رو به عنوان تقویم روزانه قرار بدید. در روز اول ماه میتونید باب اول رو بخونید و در روز دوم باب دو و الی آخر. امثال زیادی اینجا هستند احتمالا ما نخواهیم تونست همه رو بررسی کنیم اما دوست دارم که بعضی از اونها رو تفسیر کنم و ایمان دارم که امثال بسیار تعیین کننده‌ای هستند. همونطور که در کتاب مزامیر هم برخی از اونها رو تفسیر کردیم و برای بقیه دیدگاهی کلی دادیم که چطور اونها رو برای خودتون مطالعه و تفسیر کنید حالا با استفاده از همون راهکار میخوام که بعضی از امثال رو تفسیر کنم با بررسی برخی از این امثال تعیین کننده امیدوارم که شما تجهیز بشید و تشویق بشید که بقیه ی کتاب امثال رو مطالعه و بررسی کنید میخوام بر این حقیقت تاکید کنم چون که اعتقاد دارم این به شما کمک میکنه که این کتاب رو بهتر درک کنید و اون رو در زندگی امروزیتون به کار بگیرید بعد از مقدمه سلیمان میگه ما باید این واقعیت بزرگ رو یاد بگیریم که زندگی در راه های درست حکیمانه ترین راه زندگیه به این دلیلی که شما باید سمره تلخ رفتن به راه خودتون رو بخورید و تمامی ترس راهی رو که انتخاب کرده اید تجربه کنید این جمله میتونه یک تفسیر کوتاهی از زندگی خود سلیمان باشه سلیمان میدونه که شکست خورده اما بلا فاصله صادقانه در کتاب امثال به ما میگه که یکی از راههایی که میتونید حکمت یاد بگیرید شکست هست. من مرتبا این جمله رابرت لوئیس استوونسون رو نقل میکنم که دیر یا زود انسان باید بر سر سفره عواقبش بنشینه. راه دیگری که میتونیم حکمت کسب کنیم از طریق تجربیات شکست هامون هست. وقتی ما ترس ناشی از راه های زندگیمون رو تجربه میکنیم، ارزشمندترین منترین حکمت رو به دست میاریم گاهی به عنوان والدین ما از تجربیاتمون به نفع فرزندانمون استفاده میکنیم. وقتی که اونها عواقب راه های انتخابیشون رو تجربه می‌کنن سراسیم میدیم، و اونها رو نجات میدیم و بهشون کمک میکنیم و مانع از این که اونها این حکمت رو به دست بیارند که در نتیجه عواقب راههای غلطشون میتونستن کسب کنن سلیمان پیش بینی کرده که وقتی ما تجربه وحشتناک راههای انتخابی خودمون رو کسب میکنیم، این حقیقت مسلم رو یاد میگیریم که زندگی در راه های درست ترین راه زندگیه. وقتی خدا در کلامش به ما میگه که چیزی درسته، به این دلیل میگه که ما رو دوست داره. خدا میخواد ما کارهای درست انجام بدیم چون میدونه که نتایج کارهای خوب نهایتا خوب خواهد بود. وقتی خدا به چیزی نمیگه، وقتی خدا میگه چیزی اشتباهه، به این دلیل نمیگه که ما رو ناراحت و درمانده بکنه. خدا به ما هشدار میده و چیزهایی رو که غلط هستن میگه چون که ما رو دوست داره چون خدا میدونه که عاقبت کارهای غلط نشاستن بر سر سفره سبزیجات تلخ است خدا میخواد که ما رو از تلخی و وحشت اون عواقب حفظ کنه امثال باب پنج آیات پانزده تا نوزده قسمت زیبایی هست که جوانان رو مخاطب قرار میده و به اونها در مورد وسوسه های خاصی هشدار میده مخصوصا وسوسه زنان اغواگر البته این یک خیابان دو طرفه هست، مردان اقواگر هم وجود دارند و لازمه که زنان هشیار باشند. به چون کتاب امسال خطاب به مردان جوان نوشته شده، در مورد زنان اقواگر هشدار داده. آشکار است که کتاب امثال خطاب به مردان جوان متأهل هست. چون چیزی را که سلیمان در آیه 5 میگه، میتونیم به این ترتیب خلاصه کنیم. بهترین دفاع در مقابل زنان اغواگر یک همسر خوب است. بهترین دفاع در مقابل وصفصه زنا داشتن ازدواجی موفق هست در باب پنج آیات پانزده تا نوزده سلیمان میگه که شما همیشه باید از محبت زنتون بهرهمند بشید بعد وقتی که وارد دنیا میشید اگر با وصفصه یکی از زنان اقواگر روبرو بشید چندان آسیب پذیر نخواهید بود چون نیازهای جنسی شما قبلا تأمین شده این نصیحت خوبی هست سلیمان به مردان جوان در مورد زنان فاهشه هشدار میده سلیمان میگه هر کسی که مرتکب زنا بشه یک احمق کامل هست چون جان خودش رو نابود میکنه اگر میخواهید که راه جهنم رو پیدا کنید به خانه فحشا نگاه کنید شبان دیک وودوارد به دانشکده میرفت که نزدیک محلات پایین لس آنجلس بود اده زیادی تمام وقتشون رو درون پارکی که در اون حوالی بود میگذروندن دیک تمام وقتای آزادش رو به اون پارک می رفت و با اون مردم صحبت می کرد و سعی می کردون ها رو به فکر واداره که از این وضعیت بیرون بیاد. با گروه از مردان در طی دو ساعت صحبت کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که یکی از مشکلات اساسی اونها زنان بودن. کار عشقبازی اونها با زنان زندگی اونها را به شکست کشانده بود. اونها به الکل پناه آورده بودند و به خاطر اعتیاد به الکل به این وضعیت بی خانمانی دوچار شده بودن. بارها و بارها این داستان تکرار شده که همه چیز از زنان اقواگر شروع شده. و بعد از اون، اونها خانوادهشون را از دست دادن و به تدریج به الکل پناه ها و نهایتا شغل و همه چیزشون را از دست دادن. بعد از مصاحبه با این مردان، او فهمید که سلیمان نصیحت واقع گرایانه و عملی رو به جوانان داده و گفته اگر دنبال راه جهنم می گردید، به خانه زنان اقواگر نگاه کنید همونطور که سلیمان در ابتدای کتابش گفته این امثال تکههایی هایی از حکمت هستند این قطعات حقیقت معمولاً به همدیگر ربط ندارند بهترین راه برای مطالعه کتاب امثال اینه که یک ستون عمودی روی یک تکه کاغذ بکشید و برچسبهای های موضوع رو بر بالای اون قرار بدید مثلا بنویسید خانه ازدواج رابطه با فرزندان، رابطه با والدین، پول، خشم، کار زنان و یا هر موضوع دیگه ای هر وقت مثلی در رابطه با موضوع خاصی رو دیدید، اون رو در ستون مناسب قرار بدید. به این ترتیب میتونید کتاب امثال رو به لحاظ موضوعی بررسی کنید. و خیلی بهتره که این کتاب رو به صورت موضوعی مطالعه کنید. چون وقتی شما تمامی امثال رو در موضوع خاصی در یک جا جمع کنید، متوجه میشید که کتاب امثال به هر موضوعی به طور امیق و فراگیر پرداخته مثلا اگر شما تمام امثال رو در مورد تربیت فرزند مطالعه کنید و یا موضوع خودسازی میتونید در مدرسه کانون شادی به بچه ها درس بدید و یا ای موثر در اون مورد ترتیب بدید اینجا یک مثل بزرگ در مورد خودسازی هست در کتاب امثال میگه ای شخص کاهل نزد مورچه برو و در راه های او تامل کن و حکمت را بیاموز که وی را پیشوایی نیست و نه سرور و نه حاکمی اما خوراک خود را در تابستان مهیا میسازد و آزوغه خیش را در موسم حساد جمع میکند خودسازی و تربیت خود پیام اصلی این مثل هست. سلیمان میگه شما میتونید از یک مورچه درس خودسازی بگیرید در کتاب امثال بر زبان تاکید شده و اینطور گفته که هر که دهان خود را نگاه دارد جان خیش را محافظت نماید اما کسی که لب های خود را بگشاید حلاک خواهد شد به نظر میرسه پدران کلیسه های قدیم با این موضوع در کتاب امثال موافق بودند. در بسیاری از اجتماعات روحانیون قدیم به راهبان اجازه داده میشد فقط نیم ساعت بعد از شام صحبت کنند، چون مافوق های اونها با کتاب امثال موافق بودند که هرچه بیشتر صحبت کنیم بیشتر گناه خواهیم کرد مسئله بزرگ دیگری در کتاب امثال در باب 11 آیات 24 و 25 هست که میگه هستند که میپاشند و بیشتر میاندوزند و هستند که زیاده از آنچه شاید نگاه میدارند اما به نیازمندی میانجامند. شخص سخی فربه می شود و هر که سیراب میکند خود نیز سیراب خواهد گشت. تعالیم عیسی در راستای همین مسئله هست. عیسی گفته که بزرگترین بازنده کسیه که سعی میکنه به زندگی خودش بچسبه و سعی میکنه که زندگی خودش رو نجات بده. به قول عیسی اگر واقعا میخواهید حیات پیدا کنید باید اون رو از دست بدید. اون رو نثار کنید. زندگی خودتون رو برای خدا و برای دیگران قربانی کنید. به نظر می رسه این چیزی که سلیمان در این مثل میگه و میتونه هم برای کلیسا و هم برای زندگی خود ما کاربرد داشته باشه. یک بار در پیغامی به نام کلیسای بی از یک خادم انگلیسی شنیدم که می بیشتر کلیساها مانند گروهی از مردمی هستند که در دایره‌ای بر روی سندلی ها و رویشان به سمت داخل هست. تمام چیزی که اونها می فکر کنند اینه که چیکار میتونند برای همدیگه بکنند. به قول این واعظ کاری که لازم بود اونها بکنند این بود که روی سندلی هاشون رو به بیرون دایره برگردونند و بفهمند که کلیسا برای نجات مردم غیر ایماندار هست گمون می کنم این مسئله عمیقی هست به عنوان یک شبان که سالها تجربه خدمت دارم با تمامی وجودم ایمان دارم که کلیسا باید برای منفعت اشخاصی غیر از اعضای خودش باشه یعنی کسانی که هنوز ایماندار نیستن به عبارت دیگه وجود کلیسا باید به خاطر افراد گم شده ای این دنیا باشه کلیساهایی که رویای رسیدن به بیرون رو دارند کلیساهایی هستند که برکت عظیمی از خدا دریافت می‌کنند. آنها کلیساهای موفقی هستند چون که وقتی دیگران را به لحاظ روحانی سیراب می‌کنند خودشون هم سیراب میشن. سلیمان میگه شخص سخی فربه می شود و هر که سیراب میکند خود نیز سیراب خواهد گشت. این حقیقت لازمه که در کلیساها هم به کار گرفته بشه. در حالی که این کتاب رو بررسی می کنیم دعا می کنم که روح خدا شما رو ملزم بکنه که بقیه کتاب امثال رو که فرصت بررسی نداشتیم مطالعه کنید و از های اون بهرهمند بشید به این جواهر کوچک گوش کنید اشخاص شریر متهم می کنند اما خدا ترسان دفاع می کنند آیا تا حالا توجه کردید افراد خدا ترس قیبت نمی کنند افراد خدا ترس درو کسانی هستند که به لحاظ روحانی تلخ شدهاند. مردمان خداترس همیشه دفاع می‌کنند و شریران متهم می‌کنند همسر من زن خداترسیه اگه شما چیزی در مورد آدولف هیتلر بگید او میگه میدونید اگه ما هیتلر رو نداشتیم فولکس واگن رو هم نداشتیم او همیشه چیز خوبی در مورد هیتلر میگه هرگز دیده نشده که کسی رو تأخیر کنه این یک مشخصه روحانی است یک بار من پیرمرد بسیار خداشناسی رو دیدم که تابلویی به دیوار دفترش زده بود که عنوانش این بود. نه حمله نه دفاع. منظورش این بود که من هرگز به کسی حمله نمی کنم و هرگز از خودم دفاع نمی کنم. اشخاص خداشناس همیشه اینطور فکر می کنند. به این مثل گوش کنید. کدورت دل انسان او را منحنی می سازد. اما سخن نیکو او را شادمان خواهد گردانید. من به کسانی مشاوره دادم که ماهها و حتی سالها افسرده بودن. وقتی از افسردگیشون بهبود پیدا کردند، از اونها سوال کردم وقتی افسرده بودن، مهمترین چیز برای اونها چی بود؟ اونا همیشه میگفتن یک کلمه آمیز کسی که منو بغل کنه و بگه تو میتونی از احده این بر بیای همه چیز خوب خواهد شد. همونطور که این مثل میگه، یک کلمه تشفیقامیست میتونه موجزه بکنه. ارتباطات درست به ما اجازه رشد میده این دیدگاه حکیمانه ای است اگر شما ارتباطات داشته باشید ابزاری دارید که با اون میتونید در رابطه ازدواج و یا هر رابطه دیگری کار کنید اگر ارتباطات نداشته باشید هیچ ابزاری نخواهید داشت که در مشکلاتتون از اون استفاده کنید سوء تفاهمات رایج بین مردم در روابطی مانند روابط زناشویی مانند باکتری ها هستند اونها در تاریکی زیاد میشن اما بسیاری از اونها نمیتونن در روشنایی رشد کنند ارتباطات چراغ رو روشن میکنن وقتی شما چراغ رو روشن می کنید بیشتر اون باکتری ها می میرند و اون که نمی میرند میشه از افتشون برومد وقتی در یک رابطه گفتگو می کنید در واقع از ابزاری استفاده می کنید که رابطه رو تقویت میکنه بدون گفتگو باکتری ها زیاد میشن زیاد میشن و شما نمیتونید هیچ کاری در مورد اونها بکنید بسیاری از محققین بر این باورند که کتاب امثال بر اساس زندگی یک مرد جوان نوشته شده اولین نصیحت زمانی به او داده شده که هنوز یک کودک هست و با والدینش زندگی میکنه. بعد وقتی بزرگتر میشه، کتاب امثال به گروه همسالان او و دوستانش مربوط میشه و بالاخره به ازدواجش و به نقشش به عنوان یک شوهر و یا پدر، امثال زیادی در موضوع تربیت فرزندان هست. بسیاری از امثال میگن اگر شما از تعدیب پسرتون امتنا کنید، این نشون میده که او رو دوست ندارید. اگر شما پسرتون رو دوست دارید، بیدرنگ او رو تنبیه و یا تعدیب خواهید کرد. اگر جدولی رو که گفتم آماده کنید، در ستون مربوط به تربیت فرزندان امثال زیادی رو خواهید دید. مرد نیکو میخورد تا زندگی کند، در حالی که مرد شرید زندگی میکند تا بخورد. این مثل ممکنه بسیاری از ما رو ناراحت کنه. این بسیاری از ما رو میرنجونه و سوال جالبی به دنبال داره. مردم چرا میخورن؟ این سوال خوبیه. بسیاری از مردم برای زنده ماندن میخورن، اما خیلی از ماها به این قناعت نمیکنیم. ما میخوریم چون غذا خوشمزه هست. ما میخوریم چون شاد هستیم. میخوریم چون نگران هستیم. میخوریم چون عصبانی هستیم. میخوریم چون افسرده هستیم. میخوریم چون تنها هستیم. لیست بلندی از دلایل خوردن ما وجود داره. ما میتونیم با درک و بکارگیری این مسئل بسیاری از مشکلات سلامتیمون رو حل کنیم. مرد نیکوکار میخورد تا زنده بماند و به همون نیز اکتفا میکنه. مرد شریج زندگی میکنه تا بخوره. تمام فکر او وقتی صبحونه رو تموم میکنه اینه که برای نهار چی بخوره و وقتی نهار رو تموم میکنه به این فکر میکنه که شب چی بخوره. تفسیرهای متفاوتی از این مثل هست یکی از این تفسیر میگه مرد عادل به اندازه قلبش میخوره اما شکم مرد شریر همیشه خالی هست. همیشه بیشتر میخواد. شاید از این تفسیر بیشتر خوشتون بیاد این مثل خوبیه جایی که گاو نباشد آخر پاک است اما از قوت گاو است که محصول فراوان میشود این یک مثل حکیمانه است اگر شما استبلی خالی داشته باشید مجبور نیستید چیزی رو تمیز کنید اما از یک استبل خالی نمیتونید پولی دربیارید. برای اینکه پول در بیارید باید مشتاق باشید که استبل رو تمیز کنید و وقت و پول بذارید این نصیحت خوبیه شخص کاهل آرزو میکند و چیزی پیدا نمیکند اما شخص زرنگ فربه خواهد شد به عبارت دیگه کسی که نتونه پیشرفت کنه خیلی خسته خواهد شد اما زندگی شخص زرنگ دائمان مهیج خواهد بود چون همیشه در حال رشده کنفسجوس گفته که برای آزمایش هوش یک مرد راه هست اولیش اینه که آیا او میتونه نظریه جدیدی رو بپذیره؟ دومیش اینه که آیا او میتونه یک غریبه رو بپذیره؟ و سومیش اینه که آیا او میتونه خودش رو بپذیره؟ امثال به ما میگه که یک مرد خدا میتونه خودش رو بپذیره او از خودش خسته نمیشه این شخص کاهل هست که رشد نمیکنه و از خودش خسته میشه رفتار ملایم عمر رو میده شرکت های بیمه این رو به شما خواهند گفت به این دلیل که خیلی مهمه که از گردن به بالا چکاب بشید یه بار شنیدم که کسی میگفت اگر رفتارها تا این حد مهم هستند پس لازمه که از درستی رفتارتون مطمئن بشید شما عملا میتونید با داشتن رفتارهای خوب عمر خودتون رو افسایش بدید. گرستنگی خوبه به شرطی که کار کنید و اون رو رفت کنید. گرستنگی و فقر میتونن یک آبراهام لینکول و یک گاندی بسازن و یا میتونن یک عضو مافیا بسازن. گرستنگی میتونه کسانی به بار بیاره که تلخ و عصبانی میشن و نسبت به جامعه خشن میشن و تمام مشکلاتشون رو به گردن جامعه میدازن. اما گرستنگی همیشه مردمان تلخ و عصبانی نمیسازه. گرسنگی میتونه وسیله ای بسازه که سهم مناسبی در جهت برآوردهن نیازهای شما داشته باشه شنیدم کسی میگفت مردانی رو میشناسه که این شهر رو بنا کردن. او میگفت همه اونها مثل من بودند همه اونها گرسنه بودند وقتی ما وارد عرصه زندگی شدیم گرسنه بودیم و از اونجا بود که وسیله رشدمون رو یافتیم ما هجده ساعت در روز کار کردیم و این شهر رو بنا کردیم حالا که ما موفق شدیم، پسرانمون رو به دارشکده های خوب میفرستیم و اونها وقتی به خانه برمیگردن، از ما میخواند که تمام مدت با اونها بازی کنیم. اونا نمیتونن بفهمند که چرا ما همیشه کار میکنیم. گرسنگی میتونه بناکننده باشه به شرطی که شما رو به حرکت در زندگی وادار کنه. کسی که به گرستنگیش این گونه واکنش نشون میده، از ترس دوباره گرسنه شدن نجات پیدا میکنه. امروز جوانان بیتفاوتی هستند که هیچ انگیزه ای ندارند چون هرگز گرسنه نبودن. والدین اونها دیدن که اونها هیچ شناختی از این ندارند که گرسنگی چه جور احساسی میتونه باشه والدین اونها با ها و مشکلات بزرگ شدند بنابراین میدونند که گرسنه بودن یعنی چی والدین انواع وا انگیزه ها رو دارند و نمیتونند با بیتفاوتی فرزندانشون کنار بیان همونطور فرزندانشون نمیتونن با انگیزه والدینشون همراهی کنن. قطعه دیگری از حکمت اینه. مرد کم حرف و متفکر حکیم هست. بنابراین احمقان هم حتی اگر خاموش باشند حکیم به نظر میرسن. یک تفسیرش میتونه این باشه. بهتره که خاموش باشی و احمق به نظر برسی تا اینکه دهانت رو باز کنی و حماقتت رو ثابت کنی. باب بیست آیه بیست و چهار میگه قدمهای انسان از خداوند است پس مرد راه خود را چگونه بفهمد؟ این مسئله عمیقی هست. به قولش اشعیا خداوند میگوید که افکار من افکار شما نیست و تاریخ‌های شما تاریخ‌های من نیست. زیرا چنان که آسمان از زمین بلندتر است، همچنان تاریخ‌های من از تاریخ‌های شما و افکار من از افکار شما بلندتر می باشد. یک دقیقه به این فکر کنید. اگر ما بخواهیم راه‌های خدا را بدونیم، اگر بخواهیم اراده خدا را بدونیم، اگر بخواهیم طریق او اراده او رو پیدا کنیم چرا باید همیشه راهی رو که در اون میریم درک کنیم خدا صادقانه به ما هشدار میده که او مثل ما فکر نمیکنه و مثل ما عمل نمیکنه بنابراین مردی که در راه های خدا گام بر داره باید توقع داشته باشه روزهایی رو تجربه کنه که مجبور بشه با ایمان گام داره چون نمی تونه راهی رو که در اون گام بر میداره درک کنه؟ مرد تنبل بهانه میاره میگه من نمیتونم کار کنم کاهل میگوید که شیر در راه است و اسد در میان کوچه هاست. این مثل بر افرادی متمرکزه که برای عدم موفقیت و انجام ندادن کار در زندگیشون همیشه بحانه ای دارن. بیرون یک شیر هست و اگه من بیرون برم شاید منو بخوره. هیچ شیری بیرون وجود نداره. اگر در روز تنگی سستی نمایی قوت تو تنگ می شود. مرد عادل اگرچه هفت مرتبه بیفتد خواهد برخاست. اما شریران در بلا خواهند افتاد یک بار شنیدم که استاد پیری می گفت آزمون شخصیت شما اینه که چه چیزی نیاز هست که شما را متوقف کنه طولی نمی کشه که بعضی ها دست از کار میکشند این مثل پیشنهاد میکنه کنه که اگر شما واقعا شخص خداشناسی هستید باید بلا رو پشت بلا تجربه کنید شاید هفت بار بیفتید اما هر بار باید بلند بشید آزمون نهایی شخصیت ما اینه که ببینیم چه چیزی مانع کار ما میشه آینه صورت شخص رو نشون میده اما این دوستان او هستند که هویت واقعی و او رو نشون میدن هر که با دزد معاشرت کند خیشتن را دشمن دارد زیرا که لعنت میشنود و اعتراف نمینماید اینجا دو مثلی هست که به ما میگه دو چیز هست که در اونها میتونیم خودمون رو ببینیم وقتی به خودتون فکر میکنید اینها بسیار مهم هستند یکی از راههایی که میتونید بگید در مورد خودتون چی فکر میکنید اینه که به معاشرت هاتون فکر کنید مثلا وقتی شما تصمیم میگیرید کسی رو برای ازدواج انتخاب کنید و یا با کسی برای ازدواج قرار میزارید، احتمالا به کسی فکر میکنید که از بسیاری جهات شبیه شما است. اگر به خودتون هزار امتیاز بدید احتمالا کسی رو انتخاب خواهید کرد که هزار امتیاز داشته باشه به این دلیلی که ازدواج نوجوانان معمولا با شکست مواجه میشه یک نوجوان شاید فکر کنه که 75 امتیاز داره و با کسی ازدواج کنه که 75 امتیاز داره اما ده سال بعد پی میبره که 1000 امتیاز داره و با کسی ازدواج کرده که فقط 75 امتیاز داره بنابراین بالاخره این ازدواج به طلاق ختم میشه خودشناسی یکی از عوامل حیاتی در موفقیت در ازدواج و جلوگیری از طلاق هست این از جمله حقایقی که نویسنده کتاب امثال وقتی به ما میگه کسانی که با اونها معاشرت میکنیم آینه خود ما هستند به اون حقیقت اشاره داره یک کارفرما بهتره که از یک کارگر آموزش ندیده استفاده کنه تا یک کارگر ماهر سرکش گاهی بهتره که کسی رو به کار بگیریم که هیچ تحصیلاتی نداره اما شخص با وفا و امانتداری هست گاهی بهتره کسی رو به کار بگیریم که هیچ تحصیلاتی نداره اما اون شخص با وفاداری امانت جای خالی تحصیلات رو میپوشونه اون بهتر از اینه که آقای ماهر رو داشته باشیم که برامون کار میکنه و سعی داره شغل ما رو از دستمون در بیاره وقتی شما این امثال مشخص رو میبینید میتونید انتظار داشته باشید که از اونها برش های طلایی حکمت رو از کتاب امثال کسب کنید یادتون باشه منظور سلیمان از گفتن این حقایق در این امثال این بود که بگه یک مرد حکیم میتونه رهبری حکیم بشه و افراد ساده اندیش باید بتونن حکیم بشن و مردم بتونن یاد بگیرن چطور زندگی کنن و چطور در تمامی شرایط زندگی واکنش نشون بدن واجه های روح، قلب و جان حدود 70 بار در کتاب امثال تکرار شدن کتاب امثال پیغامی از قوم خدا برای قوم خدا داره که خطاب به روح، قلب و جان اونهاست به اونها نشون میده که چطور زندگی کنن و چطور از احته تمامی موضوعات عملی زندگی روزمره بر بیان؟ این جملهی که موسا گفته انسان تنها محض نان نمی کند بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر می شود می تونه عنوان خوبی برای کتاب امثال باشه آخرین مسئلی که اشاره می کنم امثال سه پنج هست که میگه با تمام دل خود بر خدا توکل کن و بر اقلخیش تکی من ما در همه راه های خود او رو در نظر داشته باش و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. امروز به او اعتماد کنید. دانشجویان عزیز کلام خدا این آخرین مسئل که الان شنیدیم آیه زندگی بسیاری از شبانان هست. بغل خود تکیه نکنید. به جستجوی خداوند در تمامی راهاتون ادامه بدین و اون وعده داده که شما را در تمامی راهاتون هدایت و راهنمایی خواهد کرد. چه حقیقت شگفتنگیزی. امیدواریم که این درس ها شما را در ایمانتون تقویت کنه. هرچه در اعتماد به او بیشتر رشد کنید آرامش او رو در اواد بزرگتری در زندگیتون تجربه خواهید کرد. تا برنامه بعدی دا میکنم در حکمت و معرفت خداوند عیسی مسیح رشد کنید.